چرا سامانه پادشاهی، نگاشته دکتر حسن صفوی برای جنبش‌های های میهنی؟ بازپخش این نگاشته با ذکر نام نویسنده و منبع، یعنی بنیاد تاریخ ایران برای همگان آزاد است. هر زمان که ما بین اندیشمندان سیاسی و یا مردم عادی سخن از گزینش نوعی حکومت برای فردای پس از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به میان می آید، همباره بحث به جایی کشیده می شود که می بایست میان دو گزینه که همانا سامانه پادشاهی و یا جمهوری مردمی است یکی را برگزید. در جایی که نخست می بایست به دور از هر گونه احساسات هیجانی و پیش‌داوری زود هنگام به فلسفه زیربنایی و ریشه های پیدایش هر یک از این دو شیوه فرمانروایی اندیشید و انگاه از روی خردورزی و آگاهی آنی را برگزید که از هر نظر مناسب با جغرافیا، تاریخ و فرهنگ و سنت مردم کشور بوده و موجب ایجاد ثبات و امنیت و رفاه عمومی جامعه خواهد شد اگر به دور از تعصب‌های جانبدارانه و بر پایه مطالعه دقیق و آزمایشگاهی داده‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به بررسی روش‌های گوناگون فرمانروایی دنیای امروز بپردازیم در یافت یافت که با توجه به گوناگونی تیره های ایرانی ساکن فلات ایران زمین همباره و از دیرباز آن روشی از فرمان روایی کاربورد داشته که پایه های آن مبتنی بر بنیانهای اصلی و مشترک دودمانها و تیره های این سرزمین بوده و عبارتند از یک میهن، یک مردم و یک پرچم که ریشه در یک پارچگی و پایداری اندیشه میهن دارد و این یگان شیوهی بوده که توانسته سالیان متمادی حافظ مردم فلات ایران در مقابل تهدیدهای گوناگون باشد و اسباب دوام و پایداری فرهنگ، دانش، هنر و زبان و گویش‌های گوناگون ما را فراهم آورد. اما در مقابل آنچه امروزه تحت عنوان گلوبالیسم و یا اینترنشنالیسم با به همراه داشتن عنوانی زیبا و دلفری ارائه می دهد همانا تلاش برای از بین بردن زیر بناهای فرهنگی، سنتی و محلی است که تحت عنوان ایجاد شرایط بهتر و سازگارتر با وضعیت بین المللی، تلاش می آن را در جهان اعمال کند مقصودی که اگرچه به ظاهر پسندیده می آید اما به گواه تاریخ معاصر و بررسی کشورهای بدام افتاده ابزاری نوین در دست قدرت‌های جهانی برای ایجاد هر مرج و غارت منابع حیاتی کشورهای مذکور و جلوگیری از ایجاد صبات در فرمانروایی سرزمینشان می باشد. همه ما در دنیای امروز روش حاکمیتی را میپذیریم که در محتوا ماهیتی دموکراتیک داشته و یا به عبارت دیگر مردم نهاد باشد تا بتواند به نیاز دموکراسی، و یا همان مردم سالاری پاسخ دهد حاکمیتی که شرایط فرمانروایی مردم به دست مردم و برای مردم را فراهم سازد در این گونه ساختار حاکمیت هر شهروند حق مشارکت و انتخاب سرنوشت خود را داراست و می تواند با هر نگرش باور دینی و مذهبی جنسیت، گویش، رنگ پوست و زادگاهی که دارد شخصاً وارد میدان شده و خود را کاندیدای حضور در صحنه سیاست نموده و یا با رأی دادن به نماینده منتخب خود از حق تعیین سرنوشت خود به دست نمایندهش بهرهمند گردد شاید بتوان همه نظام فرمانروایی در جهان را به لحاظ ساختار زیر مجموعه مستقیم یکی از این چهار گونه که در ادامه خواهیم گفت و یا تلفیقی از آنها دانست این شیوه ها عبارتند است خودکامگی یا دیکتاتوری فردی و یا ریاستی خودکامگی شورایی پادشاهی یا سلطنت و جمهوری همانطور که گفته شد برخی از سایر فرم های فرمانروایی می تواند از تلفیق روش های مذکور به وجود آید به طور مثال خودکامگی ریاستی موروسی، مانند کره شمالی جمهوری آذربایجان و یا سوریه خودکامگی ریاستی تک مانند چین کوبا و یا ویتنام خودکامگی ریاستی به ظاهر پارلمانی مانند روسیه خودکامگی شورایی مانند مصر میانمار رمه فیجی ریاستی جمهوری همانند آمریکا تیمور شرقی جمهوری پارلمانی مانند فرانسه ایرلند سلطنت پادشاهی مطلقه و یا فردی به مانند عربستان سعودی برونه سلطنت پادشاهی نیمه مشروطه با محدودیت قانون مانند اردن، مراکش، سلطنت پادشاهی مردم سالار یا مشروطه شورایی با محدودیت پادشاه مانند مالزی، سلطنت پادشاهی مردم سالار یا مشروطه با محدودیت پادشاه به مانند ژاپن، اسپانیا و بریتانیا. اما آنچه حائز اهمیت است این است که محتوای مورد نظر و خواست ما در نوع فرمان پس از فروپاشی حکومت اسلامی یعنی ماهیت دموکراتیک و یا مردم نهاد بودن فرمان تنها به چند مورد از موارد فرمان روائی مذکور محدود می شود. آنها عبارتند از شورایی پارلمانی ریاستی جمهوری جمهوری پارلمانی سلطنت مشروطه یا پادشاهی پارلمانی با محدودیت پادشاه به قانون در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا به باور ما شیوه فرمانروایی سلطنت مشروطه و یا پادشاهی پارلمانی با بهره از توانمندی های سامانه پادشاهی به گواه تاریخ می تواند بهترین گزینه پیش روی مردم برای رهایی از شرایط کنونی و همچنین ایجاد امنیت صبات در آینده ایران فردا شود در این نو فرمانروایی کشور دارای سه نهاد مستقل دادگستری قانونگذاری و دولتی خواهد بود و همه مردم ایران در برابر قانون از حقوق یکسان بهرمند شده و در آن شهریار و یا شهربانوی میهن یعنی مقام پادشاه نمادی از همبستگی مردمی میهنی فرنگی تیره های گوناگون سرزمین بوده و فارغ از مسئولیت حکومت و حکمرانی تنها نقش حفاظت از سند یکپارچگی میهنی و پاسداری از درخت همبستگی ملی را بر عهده دارد اما به راستی چرا سامانه پادشاهی امترین راه نجات فلات ایران از هرج و مرج کنونی و رسیدن به فردایی روشن و ثبات به لحاظ سیاسی و حکومتی و معیشتی مردم است. پس بیایید با هم به واکابی شاخصهای آن بپردازیم پردازیم که ریشه در تاریخ تمدن و فرهنگ ملل مردم ایران زمین دارد. بند اول، اهمیت وجود شهریار و یا شهربانو به عنوان نماینده سامانه پادشاهی. وجود یک شهریار یا شهربانو، یعنی پادشاه، مهمترین رکن سامانه پادشاهی است. در تاریخ هزاران ساله ما همباره وی به جایگاه پادشاه تکیه زده و برای اعتلای نام میهن و رفاه مردم و مبارزه با تهدیدها و جنگها میگوشد اما در پادشاهی پارلمانی نوین و یا همان سلطنت مشروطه وی مطابق قانون می از حکمرانی و حکومتداری فاصله گرفته و بدون وابستگی به فرقه، گروه و یا تیره خاصی و به از تسلط و نفوذ هر نوع ایدئولوژی دینی، مذهبی و یا سیاسی انحصارطلب، اختیار می یابد تا از درخت همبستگی میهنی در برابر طوفان های بیگانه حراست کند و انعکاس دهنده صدای تمام مردم میهن در شرایط بحرانی شود. همه ما به خوبی می‌دانیم که مردم فلات ایران از دیرباز کم و بیش از پانزده تیره با بیست و چهار گویش و ده باور دینی و یا آینی گوناگون شکل گرفتند که در درازای یک تمدن سه هزار ساله نوشته شده با وجود همه تهدیدهای خارجی و یرشهای قارتگرانه جنگ بیگانه دست در دست هم و زیر سایه درفشی واحد از ماهیت فرمانروایی کشور خود دفاع کرده و با درایت خاص و دوراندیشی از منافع میهن یک بارچه در برابر دسیسه های جدایی طلبانه و تفرق اندازانه بیگانه دوری جستند. چالشی که به گواه تاریخ بسیاری از کشورهای دیگر همسایه نیز بدان دچار شده و نتوانستند از آن سربلند بیرون آیند. و سرانجام، سرزمین ما ایران نیز از این گزند بی نماند و اینک بیش از چهل سال است که به دست مذهب فروشان فرقه تفهکار جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده و این روزها شاهد مبارزه رادمردان و شیرزنان میهنمان با اهریمن استبداد دینی و حکومت بلایی هستیم آوردگاهی که جوانان امروز میهن با فریاد رزاشاه روحت شاد و یا ای شاه ایران برگرد به ایران، در برابر دشخیم نظام استبداد دینی به پاس ساختند، شاید خود نشانه دیگر از آگاهی و درایت نسلی نو از تاریخ کشورش می باشد که حکایت از باورمندی بیش از پیش آنان به کارایی سامانه پادشاهی در پیکار با دسیسه های استعماری خارجی و داخلی دارد. بند دوم، تسبیت سکولار بودن، و در بطن جایگاه پادشاهی استوار شدن ماهیت سکولار و دموکراسی، یعنی غیر جانب مذهبی و مردم سالار در جایگاه پادشاهی که شهریار و یا شهر بر آن تکیه زده و مسئول حراست از آن می باشد این جایگاه بر طبق قانون قائم به ذات است نه قائم به فرد و این به آن معناست است که شخص پادشاه و یا ملکه از آن اعتبار میگیرد و بقای این جایگاه نیز به زندگی شهریار و شهربانو وابسته نیست و بیواسطه در گروه خاست اکثریت مردم میهن است. شاید به همین خاطر باشد که قدرتهای بیگانه برای نابودی تمدن ایران قبل از هر چیز تلاش به بی نشان دادن این جایگاه در باور مردم کرده و میکنند تا به این وسیله قبل از هر چیز شاه صفحه شترنج مناسبات قدرت را از صحنه خارج کرده و با این کار صند یک کشور را یک جا به دست مردمش نابود سازند و سپس برایتی و بدون مانع زمام امورشان را به دست گیرند. زنده باد پادشاه، زنده پادشاه. زندباد، پادشاه این شعار خود به گواه تاریخ مهمترین سلاح و تنها راز مندگاری بریتانیای کبیر در برابر حجوم گسترده نیروهای بیگانه در گذر تاریخ به منظور فتح این جزیره تا به امروز بوده. در جایی که یوگسلاوی با نظامی به اصطلاح جمهوری بسیار قوی پیشین خود اینک به هشت کشور کوچک با نظام های حکومتی فاسد تبدیل شده است این روزها همه ما شاهد آن هستیم که چگونه حکومت مطلقی فقیه در جمهوری ناکارآمد اسلامی تلاش دارد به هر شکل ممکن چنین جایگاهی را برای ولی فقیه که در حقیقت ریاست و رهبری حکومت اسلامی را در دست دارد به کمک ابزار کنترل افکار جمعی با سازی کند تا به خیال خود از فروپاشی نظام پوشالی این فرقه تبهکار مستبد و متعصب مذهبی جلوگیری شود. اما از آنجا که اولا جایگاه بلایت فقیه هیچ گونه زیربنای میهنی و مردمی نداشته و کوچکترین تعهدی به حمایت از حقوق تیره و دودمانهای ایرانی و حفاظت از فرهنگ و تمدن ایران زمین ندارد، و مخالف اصل دموکراسی و مردم سالاری است و از طرف دیگر نماینده تنها یک فرقه فاسد مذهبی بوده و برای بقای آن میکوشد که بر این اساس نیز اصل سکولار بودن یعنی فرا مذهبی و غیر جانب دارانه ایدولوژیکی را نیز زیر پا گذاشته عملا خود را مقابل خاست عامه مردم جان به لب رسیده از بیداد می که سرنگونی را فریاد می‌زنند و این بدان معناست که سلطنت مطلقه فردی ولی فقیه قبل از فروپاشی کامل از اعتبار ساقط شده و قطار نظام حکومت اسلامی در ایران در سراشیبی سقوط کامل میباشد اما در یک قالب درست که همان سلطنت پادشاهی مشروطه میباشد جایگاه شهریار و یا شهربانو از حکمرانی و اجرای قوانین به دور نگاه داشته می شود تا این جایگاه همواره مسون از بازخواهی شده و تنها به نمادی استوار و پایا بدل شود تا سند یکپارچگی و همبستگی میهن که اعتبارش از باور مردم به سامانه پادشاهی وام میگیرد هرگز به مخاطره نیفتاده و کشور در خطر تصاحب شدن توسط قدرت های قرار نگیرد اینجاست که شعار زنده پادشاه و یا از نوع جدیدش یعنی رضا شاه روحت شاد و ای شاه ایران برگرد به ایران نقش راستین خود را به معنی واقعی ارادی یک ملت در بازگرداندن دوباره سنت و هویت فرهنگی و تمدنی خود به خوبی ایفا می میکند و خشم نیروی حاکم را برمی‌انگیزد درکی که اکثریت مردم انگلستان فارغ از گرایش های سیاسی همواره از آن برخوردار بودند و دولتمردان آنان در جای, جای تاریخ از این بینش علیه جوامع دیگر بهره جستند تا به واسطه نادانی و فریب توده مردمانشان و ایجاد موج شاه ستیزی در دل جامعهشان به آسانی شیرازه فرمانروایی کشورهای مسکور را از هم پاشیده و آنها را زیر چتر استعماری خود در امروزه اما ادامه همان اناد و کچفهمی تاریخی را می در بخش کسیری از روشنفکران مبارز برون مرز مشاهده کرد که همچنان بر تبل تفرق افغانی و واگرایی توده مردم از سامانه پادشاهی می‌کوبند. در یک فرمان پادشاهی و یا سلطنت مشروطه جایگاه شهریار، و یا شهر بانو از جنجال های سیاسی و حکومتی به دور است دولت ها و دولت مردان می آیند و می روند و گاه از سوی مردم و یا نمایندگان مردم مورد باز خواست و پرسش قرار می گیرند در جایی که پادشاهی و یا سلطنت به گونه نامی را به حیات خود در دل تاریخ ادامه می دهد. همچنین با نهادین شدن سکولاریته و دموکراسی در جایگاه پادشاهی هر دو ماهیت در سند ملی میهنی که همانا خود سامانه پادشاهی است حکم می شود تا از گزند تغییر و یا دگرگونی توسط دولت مردان و یا جاه های احتمالی حزب حاکم مسون بوده و بدین ترتیب خود به عامل اصلی جلوگیری از ایجاد هر نوع حکومت استبدادی دیکتاتوری و تک شود بند سببوم، کمتر پادشاهی پارلمانی در مقایسه با سایر گونه‌های های فرمان روایی. سامانه پادشاهی کم حزینه ترین گونه نمایش همبستگی مردمی و میهنی است. برگزیدن یک رئیس جمهور هر دو یا چهار سال یک بار حزینه بسیار سنگینی به صندوق میهن تحمیل می کند. در جایی که نگهداری یک نظام شهریاری مردم سالار، هزینه کمتری داشته و با برنامه ریزی پیش بهتری بهتری نیز تداوم می‌آید. برای نمونه، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال 2020 میلادی حزینه‌ای بالغ بر 40 بیلیون دلار در بر داشته. در ایتالیا، هزینه نگهداری نظام جمهوری بالغ بر 220 میلیون دلار در سال برآورد می شود. این در حالی است که هزینه نگهداری دربار پادشاهی اسپانیا در همان سال از 9 میلیون دلار تجاوز نمی کند. همچنین خزانه دولت اسپانیا تنها از محل فروش یادگارهای خانواده پادشاهی یا پیلیت ورودی برای بازدید از کاخهای سلطنتی و دیدار با همبندان خانواده سلطنتی در جشنها و مسابقات ورزشی تنها از صنعت توریسم و گردشگری خارجی 560 میلیون دلار درآمد می‌آباد. هزینه دربار نروژ در بیشترین حالت به یازده میلیون دلار میرسد که در همان سال درآمد خزانه دولت نروژ از جهانگردان. که شمار آنان بسیار کمتر از شمار دیدار کنندگان از اسپانی هاست، دست کم 130 میلیون دلار بوده است. بند چهارم، کارنامه پادشاهی پارلمانی در مقایسه با سایر انباع فرمان گزارش‌های ها. گزارش های سالانه CPI یا شاخص درک فساد و روشنگری مالی و اقتصادی حکومت‌های جهان به روشنی نشانگر آن است که این شفافیت مالی، و اقتصادی در کشورهای دارای سامانه سلطنت و پادشاهی پارلمانی نسبت به سایر کشورها با فرمانروایی دیگر بیشتر بوده و در مقابل از میزان فساد بسیار کمتری نیز برخوردارند بررسی شاخص درک فساد و روشنگری در میان 191 کشور گیتی نشانگر آن است که در ده کشور نخست این فهرست هشت کشور آن از فرمان روائی سامانه پادشاهی مردم سالار برخوردارند که عبارتند از دانمارک، زلاندنو، سوئد، نروژ، هلند، لوکسامبورگ، کانادا و بریتانیا. بند پنجم میانگین میزان پیشرفت و گسترش اقتصادی بررسی اقتصاد جهانی نشانگر آن است که میانگین میزان پیشرفت و گسترش اقتصادی در میان کشورهای گیتی در آنهایی که دارای سامانه پادشاهی هستند ترازی برابر با یک ممیز سهصدمه درصد بیشتر از کشورهایی است که با روشهای فرمانروایی دیگر اداره می شوند. از دیدگاه دانش اقتصاد دلیل این امر وابسته به فرایندی است که به آن نام دره اشکها دیپ آف تیرز لقب دادند، که با تغییر دولت در حکومت‌های جمهوری و عوض شدن برنامه‌های آنان نسبت به دولت پیشین اقتصاد آن کشور همواره با یک دوران سکون و یا نوسان اجتناب ناپذیر روبرو می شود در ردبندی اقتصاد جهان World Economy Ranking نیز کشورهای دارای سامانه پادشاهی جایگاه بالا می‌یابند برای نمونه در فهرست ده برترین کشور اقتصاد بانک جهانی نام شش کشور پادشاهی زلند نو، دانمارک، نروژ، سوئد، بریتانیا و استرالیا به چشم می‌خورد. در ردبندی ثبات اقتصادی (Economic Stability) از ده کشور نخست با پایدارترین اقتصاد، هفت کشور دارای سامانه پادشاهی هستند که عبارتند از کانادا، دانمارک، ژاپن، استرالیا، سوئد، هلند و نروژ. در همین ردبندی کشورهای پادشاهی کوچک پیرامون شاخاب پارس یا خلیج فارس نیز در رده های بیست تا چهل قرار می گیرند مانند قطر، امارات متحده و عمان. بازکاوی یا آنالیز اقتصاد جهان یعنی World Economic Analysis در کاوش برای یافتن سبب گرایش بازار گستردی مصرف چین به کالاها و فراورده های نشان می دهد که بر ترین انگیزه خریداران در واقع علاقه مندی آنان به شیوه زیست خانواده پادشاهی انگلستان بوده که آن نیز به این خاطر است که بخش عمده‌ای از بازار خودرو و بلیط هواپیما تا پوشاک زنان همگی با رفتار و کردار این خانواده به گونه ای تبلیغ می شود. برای نمونه و برپایی همین کابوش، تقلید از پوشاک کاترین دوشس کمبریج همسر پرنس ویلیام در سال 2018 میلادی برابر با 180 میلیون دلار برای صنعت پوشاک انگلستان از بازار چین سود به همراه داشته است. افزایش های توریستی و رونق صنعت توریسم نیز در کشورهایی که برپایی پادشاهی و یا سلطنت پارلمانی اداره می شوند به واسطه اهمیت دادن به آداب و سنن کهن قبایل و قومیتها در چارچوب تمدن پادشاهی یکی از دلایل جذب منابع مالی از طریق صنعت گردشگری است بندششم آموزش شهریاران و شهربانوان در سامانه پادشاهی برای آینده کشور در سامانه پادشاهی پارلمانی فردی که باید اورنگ یا مقام شهریاری یا شهربانویی را در آینده بر روش بگیرد برای این نقش آموزش و پرورش مییابد تا زمانی که نوبت به او رسد و آنگاه چنان نیست که وی میبایست از ابتدا شروع به تجربه اندوزی کند بلکه تمام آموزش و مهارت از قبل توسط مشاوران فرهیخته سامانه پادشاهی به او داده شده تا بتواند به شیوهی درست به نقش تاریخی خود در قبال مردم و میهن عمل نماید برای نمونه در اسپانیا و در دوران یک سالاری یا دیکتاتوری ژنرال فرانکو صدفان یکم والا حضرت دون خوان کارلوس د بربون برای مقام پادشاهی مردم سالاری این کشور پرورش یافت و هنگامی که بر تخت نشست و توتیگران میخواستند با ایجاد یک کودتای نظامی به نام ایشان بار دیگر یک سالاری یا دیکتاتوری را به آن سرزمین بازگردانند وی بلافاصله فاصله پیامی برای مردم فرستاد که از رادیو و تلویزیون های کشور به طور پی در پی پخش می و سپاهیان کودتا خواست که یا در دم به پادگانهای خود بازگردند و یا آنکه وی تاج و تخت را رها کرده و به کشور دیگری خواهد رفت به سان بیم کودتا از میان رفت کارگردانان کودتا پس نشستند و مردم به سپاس از کار پادشاه جوان پرخواستند که از آن میان میتوان به شورای شهر استپونا که همگی از هموندان حزب کمونیست بودند اشاره کرد که تندیسی از وی در میدان بزرگ شهر برپا کردند که بر آن چنین حک شده بود بزرگزاده، قوان کارلوس، شهریار همگی اسپانیولی ها پاسبان قانون اساسی حتی امروزه نیز از پادشاه اسپانیا به عنوان شهریار یکی از نیکترین مردم ساراری های گیتی یاد می شود. بند هفت برداشتن بار تشریفات از دوش دولت مردان و ایجاد فرصت بیشتر برای آنان در سامانه پادشاهی از آنجا که کارهای آینی و تشریفاتی به شهریار و یا شهربانو بانو واگذار می شود و او برای برآوردن این کار آموزش و پرورش پیشین یافته وی نه تنها می تواند به بهترین گونه آن را به انجام برساند و به آوازه میهنی و فرهنگی کشور بیفزاید بلکه همچنین باری بزرگ را از دوش دولت مردان و آنان می توانند در جای وقت گذاردن برای این گونه آینها با تمرکز بهتر و زمان بیشتر به کارها و وظایف دولتی خود برسند. بند هشتم، گزارش جهانی رضایت از زندگی در کشور مطبوع در گزارش جهانی رضایت زندگی در کشور مطبوع سال 2019 میلادی یعنی ردهبندی سرزمین هایی که مردمانشان از وضعیت زندگی در میهن خود خوشنودند میتواند به روشنی دید که از ده کشور نخست در ردبندی هفت سرزمین و همچنین از ده کشور بعدی جدول ردبندی نیز 8 سرزمین جز کشورهایی هستند که دارای سامانه پادشاهی مردم سالار بوده و کشور نپال که در سال 2006 به هنگام داشتن سامانه پادشاهی در پایگاه جایگاه 39 این گزارش جای داشت و پس از انقلاب 2008 به یک جمهوری دموکراتیک بدل شد اینک به ردیه صدوم در این گزارش سقوط کرده است جمهوری اسلامی در همین گزارش در جایگاه 117 از 151 کشور قرار دارد گزارش جهانی وضعیت قانونمندی و نظم در گزارش جهانی پیروی از قانون و نظم مابین کشورهای جهان در سال 2020 میلادی از همه هشت کشور دارای سامانه پادشاهی در سراسر گیتی تنها دو کشور عثمانی و لسوتو در آفریقا در پنجاه رده نخست از صد و و چهار کشور قرار نمی گیرند. گذشته از کشورهای پادشاهی در اروپا، آسیای شرقی و اقیانوسیه که دارای فرمانروایی مردم سالارانه هستند. هرگاه به سرزمین هایی در شمال آفریقا و خاور میانه پرآشوب هم بنگریم در میابیم که امنیت در کشورهای خودکامه و یا پادشاهی دیکتاتوری همانند عربستان سعودی، قطر، عمان، برونئی و یا پادشاهی هایی دارای گونهای پارلمان چون مراکش، بحرین، کویت و یا امارات در سنجش با همسایگان دارای سامانه جمهوری یا جمهوری نما مانند لیبی، مصر، سوریه، عراق و یا لبنان از مقام بهتری برخوردار بوده و قانونمندی و نظم در آنها بسیار بهتر، آسودتر و پایدارتر است. بند دهم ده نقش سامانه پادشاهی در حمایت از بنیادهای نیکوکاری و مردم نهاد. آن دسته از بنیادهای نیکوکاری در سراسر گیتی که یکی از همبندان خانواده های پادشاهی ریاست افتخاری آن را پذیرفته اند در گرفتن یاری از نیکوکاران بسیار موفقترند. پایه این رویداد نخست این است که مردمان با نگرش به پایگاه اجتماعی و مالی همبندان خانواده پادشاهی به درستکاری آنان باور بیشتری دارند و سپس بسیاری از یاری یاریدهندگان امید بیشتری به پیشبرد برد آماج سازبانهای مردم نهاد میابند که دادخواهانه و بدون چشم داشت مالی و برای نمایش همبستگی خود با نماده میهنی به میدان آمدند. برای نمونه همکنون همبندان خانواده پادشاهی بریتانیا، از ملکه الیزابت دوم تا نوادگان ملکه ویکتوریا سرپرستی بیچشم داشته بیش از 1200 بنیاد نیکوکاری از کوچک مانند های ویژه کودکان با چالش آموزشی یک شهر تا بزرگترین آنها مانند بنیاد بلکام با 26 میلیارد پوند در درون بریتانیا و یا بنیاد جهانی حمایت از حیوانات وحشی و بنیاد آسیا بریتانیا برای یاری به خانواده های مستمند آسیای جنوبی را پذیرفته اند. و کسانی چون ویلیام و همسرش کاترین دوشس کمبریج و یا دیگر شاهزاد خانوم خانواده سلطنتی دست کم 36 ساعت در هفته را به کار در این بنیادها میگذرانند. لازم به ذکر است که بیشتر حمایتهای مالی از بنیادهای نیکوکاری خانواده پادشاهی انگلستان توسط نیکوکاران ایالات متحده و یا کشورهای عربی چون لبنان و سرزمین های مشتر همچون هندوستان واریز می شود که نشانگر آن است که حتی بیگانگان نیز به نیک کرداری همبندان خانواده پادشاهی باور بیشتری دارند در همسایگی ایران نیز پرتوانترین بنیات های نیکوکاری را می توان به ترتیب در کشورهای کویت، قطر و امارات یافت در ایران پیشینه نیکوکاری به دوران هخامنشیان باز می‌گردد. از آزادسازی بندگان اسرائیلی از بردگی در بابل و خانماندهی آنان در ایران تا پرداخت حزینه بازگشت آنان به سرزمین مادرزادی و نوسازی پرستشگاه هایشان در اورشلیم که بابلیان در هم کوبیده بودند. از انوشیروان دادگر و کلبه پیرزن، که در کنار کاخ تیسبون برپا ماند تا پیرزنی که چون ستم دید دست به دامان سلطان سنجر آویخت و حق خود را دریافت کرد از شاه اسماعیل دوم و شاه عباس صفوی که هر شب در کوچه های شهر میگشتند و از خرده دست فروشان کالا میخریدند، تا دستور ناصرالدین شاه که مانده خوراک های آشپزخانه علیزوطویلش باید همه شب به تنگ دستانی که با کاسه‌ای در دست به کنار کاخ می آمدند، داده می شود. و در ادامه می رسیم به شمار بنیادهای های نیکوکاری دوران پهلوی نخست و پهلوی دوم که از آن جمله می توان از انجمن شیر و خورشید ایران نام برد که در منگاه های رایگان آن به داد فرودستان رسید تا ارائه کتاب‌ها و خوراک رایگان آموزشگاه‌ها، ها که از سوی سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی با حمایت از همه آهاد مردم چه توانمند و یا مردم عادی کوچه و خیابان در دسترس همگان بود. و اینک شاهد آن هستیم که چگونه با ازمیان رفتن این بنیادها و همچنین فسادی که دستگاه حکومتی را سراسر در برگرفته مردم ناگزیرند که خود با توان ناچیز و بدون سازماندهی و حمایت مؤثر شهریاری به آن مبادرت ورزند. و از این امکان بینیب باشند. این همگی گواه بر نقش پرجسته دیگری برای سامانه پادشاهی در ایفای نقش راستین خود در حمایت مردم و میهن می باشد. بند آخر، ایجاد خودکامگی با سو استفاده از نام و ابزار جمهوریت و فریب مردم. حال بیاییم با هم نگاهی به بدترین انواع خودکامگی بیاندازیم، که نطفه آن در رحم فرمانروایی جمهوری بسته می‌شود و امروزه یکی از شیوه‌های برقراری فرمانروایی دیکتاتوری درازمدت و سلطه بر مردمان کشورهاست از میان 143 جمهوری حال حاضر جهان دست کم 49 جمهوری که بیشتر آنها نوپا بوده و در آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و یا بازمانده اتحاد جماهیر شوروی سابق شکل گرفتهاند، امروزه نوعی حکومت دیکتاتوری را با ریاست جمهوری مادام العمر تجربه می کنند. به این تعداد می بایست دست کم چهار جمهوری موروسی دیگر یعنی کوبا، سوریه، اران یا آزربایجان شمالی و کره شمالی را نیز افسود که فرمان روایی خودکامه دارند و مجموع آنها به پنجا و دو کشور میرسد. بر این پایه در میابیم که پنج و دو سرزمین در سراسر گیتی نه تنها به دنبال ایجاد نوعی خودکامگی در فرمان هستند بلکه برای نیل به این هدف از نام جمهوری برای برقراری سامانه دیکتاتوری بهره میبرند که به جرأت از بدترین گونه های خودکامگی در بستر تاریخ جهان از ابتدا تا کنون هستند که میتوان یافت و دست آخر میرسیم به جمهوری های و مرج که همکنون عبارتند از هفت کشور یعنی لیبی، سومالی، لبنان، عراق، افغانستان، داؤس و ونزوئلا. بر این پایه نسبت کشورهای جمهوری خودکامه و نابسامان درگیتی در گیتی شهست و یا 42 درصد همگی جمهوری ها و نسبت سرزمین های دارای سامانه پادشاهی با پادشاه خودکامه و یا به عبارتی مسئول در حکومت به هفت ممیز چلوهشت و یا چارده ممیز شش درصد کل فرمان های پادشاهی در سراسر گیتی است که از میان آنها به جز مراکش و برونعی پنج سرزمین دیگر همگی پیرامون شاخاب پارس و یا خلیج فارس قرار دارد که بی حد گمان، هرگاه یک سامانی پادشاهی پارلمانی و مردمی در ایران برپا شود فرایند ایجاد مردم سالاری در این سلطان ها و یا شیخ از شتاب بیشتری برخوردار خواهد شد این آمار خود به روشنی گواه آن است که امروزه چگونه انواع جدید حکومت خودکامه در جهان تحت نام جمهوری و بهره برداری از نقاط ضعف آن شکل می گیرند، در حالی که کشورهای با فرمانروایی پادشاهی پارلمانی و یا سلطنت مشروطه مردم سالار راه دموکراسی و حکومت فرا مذهبی و غیر جانبدارانه ایدئولوژیکی را برای بشر امروز هموار ساختند